بخش اول انقلاب شناختی یک حیوانی ناچیز قریب بر سیزده میلیارد سال قبل ماده، انرژی، زمان و فضا به وجود آمد که به انفجار بزرگ یا بیگ بنگ شناخه شد. داستان ویژگی های بنیانی جهان ما فیزیک لقب گرفت. بالغ بر 300 هزار سال پس از ظهور ماده و انرژی، ساختارهای پیچیده ای از ترکیب این دو به وجود آمد که اتم نام گرفت. سپس ترکیب اتم ها به شکلگیری گیری ملکول ها انجامید. روایت اتم ها،, ملکول ها، و فعل و انفعالاتشان شیمی نامیده شد. نزدیک به سه میلیارد و 800 میلیون سال قبل در سیارهی به اسم زمین ملکولهای معینی با هم تلفیق شدند و ساختارهای عظیم و پیچیده‌ای را به وجود آوردند که موجودات زنده نام گرفتند. حکایت موجودات زنده زیستشناسی خوانده شد. در حدود هفتاد هزار سال قبل موجوداتی از گونه انسان ی انسان در کار ایجاد ساختارهای بقایت پیچیدهتری شدند که فرهنگ نامیده شد. تداوم تکامل این فرهنگ های بشری تاریخ نام گرفت. سه انقلاب مهم مسیر تاریخ را تعین کردند. انقلاب شناختی در حدود هفتاد هزار سال پیش تاریخ را به حرکت درآورد. انقلاب کشاورزی در حدود دوازده هزار سال قبل به این روند سرعت داد انقلاب علمی که همین پانصد سال پیش شروع شد می تواند نقطه پایانی تاریخ و آغازگر چیزی کاملا متفاوت باشد موضوع این کتاب داستان تاثیر این سه انقلاب بر انسان و بر موجودات زنده است که در کنار او زندگی می کنند انسان مدتهای طولانی قبل از تاریخ وجود داشته. جانوری که شباهت زیادی به انسان نوین دارد، ابتدا در حدود دو نیم میلیون سال پیش ظهور کرد. اما این انسان تی نسلهای بیشماری تفاوتی با انبوه کثیر دیگر موجودات زنده در محیط زیست مشترک نداشت. اگر میتوانستیم دو میلیون سال پیش گذاری در شرق آفریقا داشته باشیم، میتوانستیم به نقشهای انسانی آشنایی برخورد کنیم. مادران نگران در حال نوازش نوزادانشان، مشتی کودک شاد در حال بازی در گلولای، جوانان یاغی که بر علیه استبداد میشوریدند، پیرهای خستهی که فقط میخواستند به حال خودشان باشند، قولدورهایی که سینه تبر میکردند تا از زیباروی محله دلربایی کنند و سالار زنان پیر و دانا که همه چیز را در زندگی تجربه کرده بودند این انسانهای کهن عشق می ورزیدند، بازی میکردند، طرح مراوده و دوستی میریختند و برای قدرت و مقام میجنگیدند. درست مثل شامپانزه ها، میمون ها و فیلها. انسان در آن زمان موجود خارق‌العاده‌ای نبود. هیچ کس حتی خود انسان هم کوچکترین تصوری از این نداشت که آیندگانش کره ماه را فتح کنند، اتم را بشکافند، رمزهای ژنتیک را بخوانند و کتاب تاریخ بنویسند. مهمترین چیزی که لازم است راجع به انسان کوهن بدانیم این است که او حیوان ناچیزی بود که بیش از گوریلها، کرمهای شبتاب و عروس دریایی بر محیط خود تأثیر نمیگذاشت. شناسان موجودات زنده را به گونه ها تقسیم می کنند حیواناتی که مایل به جفتگیری با هم باشند و بتوانند فرزندان بارور به دنیا آورند متعلق به یک گونه هستند از پاوالاقها اجداد مشترک و ویژگی های جسمانی مشترک بسیاری دارند اما تمایل چندانی برای جفتگیری با هم ندارند این دو می توانند با هم جفتگیری کنند اما فرزندشان که قاطر است نازا خواهد بود بنابراین متاسیون یا جهش ژنتیکی در DNA ای نمیتواند بین الاق و اسب منتقل شود. به این دلیل از این دو حیوان به عنوان دو گونه متفاوت یاد می کنند که هر کدام در امتداد مسیرهای تکاملی جداگانه سیر می کنند. از طرف دیگر سگ بولداگ و سگ اسپانیل که میتوانند از نظر ظاهری خیلی متفاوت باشند متعلق به یک گونه واحد هستند و مجموعه دی این ای مشترکی دارند این دو از می توانند به خوبی جفتگیری کنند و طوله های آنها هم میتوانند با هم رشد کنند جفتگیری کنند و طوله های بیشتری به وجود آورند گونه هایی که اجداد مشترکی دارند تحت عنوان جنس طبقه بندی شدند. شیر، ببر و گونه های مختلف پلنگ گونه های متفاوتی هستند که به جنس پانثرا متعلقند. زیستشناسان به این موجودات زنده یک نام لاتین دو بخشی دادند که هم جنس و هم گونه آنها را در بر می گیرد. به عنوان مثال شیر پانترا لئو لقب گرفته یعنی از گونه لئو و از جنس پانترا البته همه آنهایی که این کتاب را می خوانند انسان خردمند هستند یعنی گونه خردمند از جنس انسان جنس های مختلف حیوانی به نوبه خود به خانواده های گوناگون طبقه بندی می شوند مثل گربسانان، سکسانان و فیلسانان همه اعضای یک خانواده اصل و نصب خود را در اصلاف مادری یا پدری میابند. تمامی گربسانان از گربه خانگی کوچک گرفته تا وحشی‌ترین شیرها اجداد گربسان مشترکی دارند که در حدود 25 میلیون سال پیش زندگی میکردند. انسان خردمند هم متعلق به یک خانواده است، این واقعیت پیش پا افتاده در گذشته یکی از پنهانی ترین اسرار تاریخ شده بود انسان خردمند تگ مدت زمانی طولانی ترجیح می‌داد خود را موجودی جدا از حیوانات و بدون خواهر و برادر تصور کند و مهمتر از همه فاقد پدر و مادر فرض کند اما اینطور نیست ما صرف نظر از اینکه بخواهیم یا نه به یک خانواده بزرگ و پر سر و صدا تعلق داریم که های بزرگ نام دارد. نزدیکترین خیشاوندان ما شامپانزه‌ها، گوریل‌ها و اورانگوتان‌ها هستند. شامپانزه‌ها از دیگران به ما نزدیک‌ترند. همین 6 میلیون سال پیش میمونی دو دختر زایید. یکی از این دو مادر بزرگ شامپانزه‌ها شد و دیگری مادر بزرگ ما. رازهای نهان انسان خردمند یک راز آزاردهنده تر را هم پنهان نگه داشت. ما نه تنها دارای انبوهی از خیشاوندان وحشی بوده ایم بلکه زمانی برادران و خواهرانی هم داشته ایم. ما به این تفکر عادت کرده ایم که تنها گونه انسانی هستیم زیرا گونه ما تا ده هزار سال اخیر تنها گونه انسان در گستره زمین بوده. اما مفهوم واقعی واژه انسان جانوری از جنس انسان است و در گذشته گونه های متعددی از این جنس در کنار انسان خردمند وجود داشتند به علاوه به طوری که در فست آخر کتاب خواهد آمد این امکان وجود دارد که در آینده ای چندان دور با انسان سر و کار خواهیم داشت که خردمند نیستند برای وضوح بیشتر مطلب اغلب از واژه انسان خردمند برای اشاره به اعضای گونه انسان خردمند استفاده خواهم کرد حال انکه واژه انسان را به تمام اعضای جنس انسان اختصاص میدهم انسان بدوند در حدود دنیم میلیون سال پیش در شرق آفریقا از جنس یک میمون قدیمیتر جنس استرالوپیتکوس یعنی میمون جنوبی تکامل یافت قریب به دو میلیون سال قبل گروهی از این مردان و زنان دوران کهن زادگاه خود را ترک کردند و پهنه های وسیعی از شمال آفریقا، اروپا و آسیا را زیر پا گذاردند و آنجا ساکن شدند. زندگی و بقا در جنگل های برفی اروپای شمالی در مقایسه با جنگل شرجی اندونزی نیازمند ویژگی های متفاوتی بود. از این رو گروه های انسانی در مسیر تکاملی خود راه های متفاوتی را پیمودند. در نتیجه گونه های گوناگونی شکل گرفتند که دانشمندان برای هر کدام نام های لاتین پرتم اختیار کردند. انسان در اروپا و غرب آسیا به هومو نیاندر تالنسیس انسان در ری تکامل یافت. نهاندرتال که دروشتر و ازولانیتر از ما انسان‌های های بودند، سازگاری بیشتری با سرمای دوران یخبندان قرب اوراسیا داشتند. مناطق شرقیتر آسیا توسط هومو ارکتس، یعنی انسان راستقامت اشغال شد. انسان‌های راست راستقامت در آن مناطق نزدیک به دو میلیون سال به بقای خود ادامه دادند و، این زمان آنها را در صدر گونه انسانی قرار داده که طولانیترین ترین دوره بقا را داشتند. این امر که گونه ما بتواند این رکورد را بشکند محتمل به نظر نمی رسد. در اینکه انسان خردمند بتواند در هزار سال آینده وجود داشته باشد جای تردید است. بنابراین یک دوره بقای دو میلیون ساله خارج از توان رقابتی ماست. انسان سولوانسی یا هومو سولووانسیس انسان دره سلو در جزیره جاوا در اندونزی زندگی میکرد و برای زیستن در مناطق استوایی تطابق بیشتری داشت در جزیره دیگری در اندونزی جزیره کوچک فلورس انسانهای کوهن یک روند کوچک شدن را طی کردند زمانی که سطح آب پایین بود و عبور به جزیره امکان پذیر بود مردم به فلورس آمدند وقتی سطح آب بالا آمد بخشی از اینها در جزیره محبوس میشدند و ناچار بودند به منابع مختصران منطقه قناعت کنند انسانهای درشت جسه‌ای که نیازمند غذای زیادی بودند قبل از دیگران از بین رفتند آنهای دیگر که جسه کوچکتری داشتند خیلی بهتر به بقای خود ادامه دادند. بعد از چندین نسل انسانهای فلورس ریزنقشتر شدند. این گونه بیمانند انسان فلورنسی با نام علمی هومو قامتی یک متری و وزنی معادل 25 کیلو داشت. با این حال ابزار سنگی می ساخت و گاهی موفق می شد فیلهای جزیره را به دام اندازد اگرچه فیلها هم کوچکتر بودند محققین در سال 2010 در خلال یک حفاری در قار دنیزووا در سیبری با کشف استخوان فسیل شده یک انگشت، یکی دیگر از خواهربرادرهای کهن ما را از دوران فراموشی بیرون آوردند بررسی ژنتیکی نشان داد که این انگشت متعلق به یک گونه تا آن زمان ناشناخته بوده که نام انسان دنیزوا را به خود گرفت. کسی نمی داند که چه تعداد از خیشاوندان ناشناخته ما در انتظار سردراوردن از قارها در دیگر اقلیمها و جزایر هستند. در حالی که این انسان‌ها در اروپا و آسیا تکامل می‌یافتند، تکامل در شرق آفریقا متوقف نشد. گهواره انسانیت گونه های کثیر جدیدی شد، مثل انسان رودولفنسی یا انسان دریاچه‌ای رودولف، هومو ارگاستر، انسان کارگر و سرانجام گونه‌ی خود ما که مقرورانه نام انسان خردمند را بر خود نهادیم. شماری از این گونه ها بزرگ جسه و شماری دیگر ریز نقش بودند. بعضی شکارگران ماهری بودند و برخی دیگر از طریق جمعوری گیاهان ارتضاق میکردند. گروهی هرگز جزیره را که در آن زندگی میکردند ترک نکرد و گروهی دیگر همه قاره ها را زیر پا گذاشت. اما همگی متعلق به جنس انسان بودند و همه موجودات بشری بودند. این یک گمان نادرست است که گونه‌ها سیر تکاملی مستقیم داشتند که در آن گونه ارگاستر به ارکتوس و ارکتوس به ها و ها به گونه ما تکامل یافت. این مدل خطی یک درک اشتباه را ایجاد می‌کند که در هر دوره خاص فقط یک گونه انسانی روی کره زمین سکونت کرده و گونه‌های پیشین نمونه‌های قدیمی‌تر گونه ما بودند. حقیقت این است که از حدود دو میلیون سال پیش تا قریب ده هزار سال پیش دنیا همزمان مکان زندگی گونه های مختلف انسانی بوده. چرا که نه؟ امروزه گونه های بسیاری از روباه و خرس و خوک وجود دارد. زمین در صد هزار سال قبل خانه حداقل شش گونه انسان متفاوت بوده. این انحصار طلبی کنونی ماست که شاید در جایگاه متهم ویژگی خاص میابد، نه گذشته متنوع به صورتی که به زودی خواهیم دید، ما انسانهای خردمند دلایل روشنی برای سرپوش گذاشتن روی خاطرات مربوط به خواهربرادرهای برادرهای کوهن خود داریم. بهای فکر کردن همه گونه های انسانی علا رغم تفاوت های زیادشان در چند ویژگی گویا مشترکند. بارزترین ویژگی این است که انسان مغز فوقالعاده کوچکتری از حیوانات دیگر دارد. حجم متوسط مغزی پستانداران با وزن 60 کیلو برابر با 200 سانتیمتر مکعب است. حجم مغزی ابتدایی ترین مردان و زنان در دونی میلیون سال قبل در حدود 600 سانتیمتر متر مکعب بود. حجم مغزی انسان خردمند کنونی بین 1200 تا 1400 سانتیمتر متر مکعب است. مغز نئاندرتال ها از این هم بزرگتر بود. اینکه تکامل مغزهای حجیم را انتخاب کند شاید امری بدیهی جلوه بکند. ما به قدری مجذوب هوش و زگهاوت بالای خود هستیم که گمان میکنیم که تا جایی که به قدرت مقزی مربوط می شود بیشتر بهتر است اما اگر اینطور بود گربه‌سانان گربه های تکامل میدادند که قابلیت حساب کردن را داشته باشند چرا در میان تمامی قلمرو حیوانات این تنها جنس انسان است که چنین دستگاه فکری عظیمی کسب کرده حقیقت این است که مغز بزرگ توان بدنی زیادی می طلبد. حمله مغز بزرگ در پوستهی زخیم چندان آسان نیست و باز هم دشوارتر خواهد بود اگر بخواهیم به آن سوخت برسانیم. مغز انسان خردمند در حدود دو تا سه درصد از کل وزن بدن است، اما زمانی که بدن در حال استراحت است 25 درصد از انرژی بدن را به خود اختصاص می‌دهد. در حالی که مغز میمونهای دیگر در حال استراحت فقط 8 درصد انرژی می‌طلبد. انسانهای کوهن به های بزرگ بودن مغزشان را به دو صورت می‌پرداختند. یکی با صرف وقت بیشتر برای یافتن غذا و دیگر با تحلیل رفتن عضلاتشان به همان صورتی که دولتی اش را جابجا جا می کند و مثلا مبلغی را از بودجه بخش دفاعی برمیدارد و به بخش آموزش و پرورش منتقل می کند انسان هم انرژی را از قسمت بازو به رشتههای عصبی منتقل می کند این استراتژی به سختی می تواند برای بقا در دشتها معقول باشد یک شامپانزه نمیتواند در یک مباحثه با انسان خردمند چیرگی یابد اما می تواند او را همچون عروسکی کهنه تکه پاره کند. مغز ما امروزه می بازدهی خوبی برایمان داشته باشد. زیرا میتوانیم خودرو و اسلحه تولید کنیم و با آن بسیار سریعتر از شامپانزه حرکت کنیم و به جای درگیری تنگاتنگ از مسافتی مطمئن به او شلی کنیم. اما خودرو و اسلحه پدیدههای جدیدی هستند تی بیش از دو میلیون سال شبکه عصبی انسان گسترده تر و گستردهتر شد اما از ایجاد چند چاقوی چخماقی و نیزههای نکتیز فراتر نرفت چه عاملی باعث تکامل این مغز حجیم انسان تی دو میلیون سال اخیر شده راستش را بخواهید ما جوابی برای این سوال نداریم یک ویژگی دیگر منحصر به فرد انسان این است که ایستاده روی دو پا راه می‌رود در حالت ایستاده ساده‌تر توان تومه شکار یا دشمن را در دشت ردیابی کرد و از بازوها به جای راه رفتن برای کارهای دیگری مثل پرتاب کردن نیزه یا علامت دادن استفاده کرد هرچه توانایی دستها در انجام کارهای مختلف بیشتر میشد صاحبانش هم بیشتر توانا و موفق میشدند به این دلیل تأثیر تکامل منجر به تمرکز بیشتر اعصاب و ازولات ظریف کف دست و انگشتان شد در نتیجه انسان قادر به انجام وظایف بسیار پیچیدهتری توسط دستانش شد به طور خاص انسان قادر به تولید و استفاده از ابزار پیچیده توسط دستانش شد اولین نشانه ی تولید ابزار به دونیم میلیون سال قبل برمیگردد و باستانشناسان تولید و استفاده از ابزار را معیاری برای بازشناسی هویت انسان‌های کهن میدانند راه رفتن روی دو پا معایب خود را هم دارد تای میلیونها سال اجداد کهن ما اسکلتی را تکامل دادند تا بتواند موجودی را حمل کند که سر نسبتا کوچکی داشت و روی چهار دست و پا راه میرفت. تطبیق دادن خود برای ایستادن چالش دشواری بود به ویژه به این دلیل که این اسکلت ناچار بود یک جمجمه بسیار بزرگ را حمل کند. گونه انسان برای توفیق در دیدن دوردستها ها و دستان ورزیده خود ناگزیر از پرداخت حزینه گذافی بود که با درد کمر و خشکی گردن پرداخت. زنان حزینه باز هم سنگینتری پرداختند. یک قامت ایستاده مستلزم داشتن لگن باریکتری بود که مجرای تولد را تنگتر می کرد. این در حالی بود که سر نوزاد بیش از پیش بزرگتر می شد. به این دلیل عمل زایمان برای زنان می مترادف با خطر مرگ باشد. آنها که نوزادان زودرس با سری کوچکتر و نرمتر متولد می کردند، راحتتر زندگی می و در نتیجه زندگی طولانیتری می و فرزندان بیشتری به دنیا می آوردند. در نتیجه انتخاب طبیعی دوره بارداری را کوتاهتر کرد. در مقایسه با حیوانات دیگر انسان ها ناکامل به دنیا میآیند یعنی وقتی به دنیا میآیند که هنوز بسیاری از دستگاه های حیاتیشان به طور کامل شکل نگرفته. یک کره اسب می تواند اندکی بعد از تولد جست و خیز کند و یک گربه نوزاد تنها چند هفته بعد از تولدش مادرش را ترک می کند تا مستقلانه به جستجوی جوی غذا برود نوزاد انسان اما بعد از تولد درمانده است و تا سالهای طولانی برای غذا، امنیت و آموختن به بزرگترها وابسته است. این امر تا حدود زیادی منشع توانایی خارقلاده اجتماعی و نیز مشکلات خودویژه اجتماعی انسان شد. مادران تنها به سختی میتوانستند غذای خود و نوزادان تحت مراقبتشان را فراهم کنند. اداره و مراقبت از فرزندان نیازمند کمکهای مستمر اعضای دیگر خانواده و همسایگان بود. برای پرورش یک انسان احتیاج به کمک یک قبیله است. به این دلیل روند تکامل راه را برای آنهایی که توانایی ایجاد پیوندهای اجتماعی قویتر داشتند، بازتر کرد. از آنجا که انسان ناکامل به دنیا می آید می تواند بسیار طولانی تر از حیوانات دیگر تحت آموزش قرار بگیرد و اجتماعی شود اکثر پستانداران وقتی از رحم خارج می شوند مانند سفال لعابداری هستند که از کوه بیرون آمده به این معنی که اگر کسی بخواهد شکل آن را عوض کند سفال خراشیده می شود و یا می شکند انسان ها وقتی از رحم خارج می شباهت به شیشه زوب شده ای دارند که از کوره مذاب بیرون آمده باشند که میتوانند پیچیده یا کشیده شوند و در یک کلام میتوان آنها را آزادانه به هر شکل شگفتانگیزی تغییر داد. به این دلیل است که ما میتوانیم امروزه فرزندان خود را به مسیحی یا بودایی کاپیتالیست یا سوسیالیست جنگ طلب یا صلح تربیت کنیم. فرض ما بر این است که یک مغز بزرگ، استفاده از ابزار، قابلیت‌های خارق‌العاده برای آموختن و ساختارهای اجتماعی پیچیده، همگی امتیازهای بزرگی هستند. بدیهی است که این عوامل انسان را به مقتدرترین جانور روی کره زمین بدل کرده. اما علا تمام این امتیازات، انسانها به مدت دو میلیون سال مقهور دیگر موجودات بودند. انسان‌هایی که یک میلیون سال پیش میزیستند، علاوه بر مغز بزرگ و ابزار برندهشان همواره در وحشت از جانوران درنده در به سر می‌بردند و به ندرت های بزرگ شکار می‌کردند و بیش از هر چیز از طریق جمع‌آوری گیاهان خوردن حشرات شکار حیوانات کوچک و لاشه‌های باقیمانده از شکار حیوانات درنده در دیگر تغذیه می‌کردند یکی از مرسومترین موارد استفاده از ابزارهای سنگی اولیه شکستن استخوان برای دستیابی به مغز استخوان بود. گروهی از محققین بر این باورند که این اولین ردپای بشری بوده. همانطور که دارکوبها در شکار حشرات از میان تنه درختان تخصص یافتند، انسانهای کوهن هم روی استخراج مغز استخوان مهارت پیدا کردند. اما چرا مغز استخوان خب تصور کنید که یک گله شیر زرافه ای را میکشد و تکه پاره می‌کند. شما شکیبانه منتظر می‌مانید تا کار شیرها تمام شود. اما هنوز نوبت شما نرسیده. چون بعد از شیرها، کفتارها و شغال‌ها می‌آیند و شما هم جرأت ندارید تا برای ته‌مانده لاشه به آنها درگیر شوید. بعد از این همه شما و گروهتان در حالی که با احتیاط کامل به چپ و راست نگاه میکنید به لاشه نزدیک میشوید و در آخر با آنچه که باقی مانده از خود می میکنید این کلید فهم تاریخ و روانشناسی ماست تا همین دوره اخیر موقعیت جنس انسان در شبکه غذایی در یک سطح میانی بود انسانها در طول میلیونها سال از شکار حیوانات کوچک و جمع‌آوری هر چیز قابل خوردن ارتزاق می‌کردند و همزمان توسط حیوانات در رنده دیگر شکار می‌شدند. انسان همین چهارصد هزار سال پیش بود که به صورت منظم شروع به شکار های بزرگتر کرد و همین صد هزار سال پیش بود که با ظهور انسان خردمند خود را به قله شبکه غذایی رساند. این جهش چشمگیر از میانه راه تا قله عواقب سنگین خود را داشته. حیوانات دیگر در رأس هرم مثل شیر و کوسه این مسیر را به طور تدریجی ظرف میلیونها سال طی کردند. این امر اکوسیستم را قادر کرد تا کارکردهایی برای توازن ایجاد کند تا شیر و کوسه نتوانند اختلالهای جدی ایجاد کنند. وقتی شیرها دررنده تر شدند، قزالها دوندگان سریعتری شدند، کفتارها یاد گرفتند بهتر همکاری کنند و کرگدنها توند شدند. اما بشر برعکس با چنان سرعتی به قل صعود کرد که اکوسیستم فرصت نیافت تا خود را تطبیق دهد. به علاوه، انسان هم نتوانست خود را سازگار کند، برجسته ترین جانوران وحشی سیاره موجودات با شکوهی هستند. میلیونها سال سالاری آنها را آکنده از اعتماده به نفس کرد. اما انسان خردمند بیشتر به دیکتاتوری، حاکم بر جمهوری های کشورهای موزفروش می ماند. ما که در گذشتهی نچندان دور درمانده مانده ها بودیم، سرشار از نگرانی و وحشت از موقعیت خود هستیم که ما را دوچندان ظالمتر و خطرناکتر می کند. انبوه فجایع تاریخی از جنگ خونین گرفته تا فجایع زیست پیامدهای این جهش پرشتاب بوده. نجاد آشپز یک گام برجسته در مسیر قله مهار آتش بود. برخی از گونه های انسانی از 800 هزار سال قبل احتمالاً گاهگاهی از آتش استفاده کردند. در حدود 300 هزار سال قبل انسان راستقامت، نیاندرتال ها و اسلاف انسان خردمند از آتش به طور روزمره استفاده می کردند. از آن زمان انسان ها یک منبع گرمایی و روشنایی قابل اعتماد و یک سلاح کشنده بر علیه شیرهای چابک داشتند. دیری نپاید که انسانها آگاهانه شروع به آتش کشیدن محیط اطراف خود کردند. یک آتش محتاطانه هدایت شده می توانست بیشه های بیحاصل را به الفزار سرسبزی پر از جانور تبدیل کند، مقتی آتش فروکش می کرد، راه گوشایان دوران سنگی از میان دودها عبور می کردند و به جمع حیوانات جزغال شده، مغز بادام و ریشه های خوراکی می پرداختند. اما مهمترین کاری که آتش کرد پختن بود. غذاهایی که انسان نمی توانست در شکل طبیعی خود هضم کند مثل گندم به رنج زمینی در زمره غذاهای اصلی قرار گرفت. آتش نه تنها ترکیب شیمیایی غذا را بلکه ترکیب زیستی آن را هم عوض کرد پختن باکتری ها و انگل هایی را که غذا را آروده می کرد از بین می برد دیگر پختن این بود که جویدن و هضم غذاهای دلخواه قدیمی مثل میوه، مغزهای گیاهی، حشرات و لاشه حیوانات برای انسان آسان تر شد در حالی که شامپانزه ها احتیاج به پنج ساعت در روز برای جویدن غذای خام داشتند، غذای پخته تنها یک ساعت از وقت انسانها را می گرفت. امتیاز پختن در این بود که به انسان این امکان را داد تا غذاهای متنوه تری بخورد، وقت کمتری را به خوردن اختصاص دهد و امکان جویدن با دندانهای ریزتر و هضم با روده های را میسر کند. بعضی از محققین معتقدند که رابطه مستقیمی میان پختن غذا، کوتاهتر شدن مجرای گوارش و رشد مغز انسان وجود دارد. از آنجا که روده های دراز و مغزهای حجیم انرژی بسیار زیادی می داشتن هر دو با هم مشکل خواهد بود. با کوتاهتر شدن روده ها و سرفجویی در انرژی، پختن غذا به طور تصادفی راه را برای مغزهای بزرگ ناندرتال و انسان خردمند باز کرد. استفاده از آتش همچنین اولین فاصله قابل توجه میان انسان و حیوانات دیگر را ایجاد کرد. قدرت تقریبا تمام حیوانات وابسته به جسمشان است، مثل قدرت عضلانی، اندازه دندانها و عرض بالها. حتی اگر بتوانند باد و جریان هوا را مهار کنند، اما نمیتوانند این نیروهای طبیعی را کنترل کنند و محدود به قالب جسمی خود هستند. به عنوان مثال، اقابها ها می توانند جریان هوای گرم را که از زمین برمیخیزد تشخیص دهند، بالهای بزرگشان را باز کنند و از هوای گرم برای بلند شدن از زمین استفاده کنند. اما نمی توانند جای این جریان های هوای گرم را تعیین کنند و منتهای نیروی پروازشان نسبت دقیقی با عرض بالهایشان دارد. وقتی انسان آتش را مهار کرد، بر یک نیروی رام و بلقوه نامحدود احاته یافت. در تفاوت با اقاب ها انسان ها می توانستند انتخاب کنند که چه وقت و کجا آتش روشن کنند و آن را برای مقاصد گوناگون به گیرند. مهمترین نکته این بود که نیروی آتش محدود به شکل، ساختار و توان جسمی انسان ها نمی شد. تنها یک زن توسط یک سنگ چخماق یا یک چوب آتش میتوانست می یک جنگل کامل را ظرف چند ساعت به آتش بکشد. مهار آتش از آنچه که خواهد آمد خبر می‌داد. حافظان برادران ما انسان ها با وجود نقش آتش در زندگیشان در 150 هزار سال قبل هنوز موجوداتی هاشیهی بودند. آنها در موقع میتوانستان شیر را فراری دهند، خود را در شبهای سرد گرم کنند و جنگلی را به آتش بکشند. اما اگر همه گونه های انسانی موجود را به حساب آوریم، شاید تعدادشان هنوز از یک میلیون نفر فراتر نمی‌رفت که در مجمع‌الجزایر اندونزی و شبه جزیره ایبریا زندگی می‌کردند. این یعنی صرفاً نقطه‌ای روی صفحه رادار زیست‌بومی. گونه خود ما انسان خیردمند در آن زمان در صحنه جهان حضور داشت، اما در گوشه از آفریقا هنوز سر در لاک خود داشت. ما به درستی نمیدانیم حیوانی که به عنوان انسان خیردمند شناخته شده، اولین بار کجا از انسانهای ما قبل خود تکامل یافت. اما اکثر محققین در این نظر هم عقیده اند که 150 هزار سال پیش شرق آفریقا توسط انسان خدمنددی اشغال شده بود که دقیقا شبیه به ما بود. اگر یکی از این افراد در زمان حاضر در یک سردخانه امروزی ظاهر میشد کالب چه کافی تفاوت چشمگیری را نشان نمیداد. این انسان ها به مدد آتش، دندان ها و فک کوچکتری از نیاکان خود داشتند، اما مغزشان به بزرگی مغز ما بود. محققین همچنین هم همعقیدند که انسان خردمند در حدود 70 هزار سال قبل از شرق آفریقا به شبه جزیره عرب آمد و به سرعت در قسمت های وسیعی از سرزمین های اوراسیا پراکنده شد. زمانی که انسان خردمند به شبه جزیره عرب آمد، بیشتر قسمت‌های اوراسیا قبل از آن توسط دیگر انسان‌ها اشغال شده بود. اما چه اتفاقی برای آنها افتاد؟ در این باره دو نظریه متضاد وجود دارد. نظریه آمیزش حکایت از کشش متقابل جنسی و آمیزش دارد. وقتی مهاجرین آفریقایی در پهنه زمین پراکنده شدند، با گروه‌های انسانی دیگر جفتگیری کردند و انسان امروزی حاصل این آمیزش است. به عنوان مثال، وقتی انسان خردمند به خاورمیانه و اروپا رسید، با ها برخورد کرد. این مردم از زلانی تر از انسان‌های خردمند بودند، مغزهای حجیم‌تری داشتند و با آب و هوای سرد سازگارتر بودند. آنها از ابزار و آتش استفاده می کردند، شکارگران ماهری بودند و گویا از بیماران و ضعیفان خود مراقبت می کردند. باستانشناسان استخانهای از نهاندرتال ها یافتند که تیه سالیان طولانی مبتلا به نقص عضوهای شدید بودند. این نشان می دهد که آنها از بستگان خود مراقبت می کردند. در نقاشی های کاریکاتور، ناندرتال اغلب به عنوان نمونه های کوهن قارنشین کمشعور و احمق تصویر شدند، اما یافته های جدید این تصویر را عوض کرد. براساس نظریه آمیزش، وقتی انسان خردمند در مناطق ناندرتال ها پراکنده شد، با آنها آمیزش کرد و مردم این دو گروه در هم ادغام شدند. اگر این نظریه درست باشد، اوراسی امروزی انسانهای های خردمند خالص نیستند، بلکه ترکیبی از انسان های خردمند و نیاندرتال هستند. به همین شکل وقتی انسانهای های خردمند به شرق آسیا رسیدند، با انسانهای های راستقامت محلی آمیزش کردند و در این صورت چینی و کرهایها ها ترکیبی از انسانهای های خردمند و راستقامت هستند. نظریه مخالف معروف به نظریه جایگزینی حکایت بسیار متفاوتی را مبنی بر ناسازگاری، تنفر شدید و حتی قتل عام بیان می کند. بر اساس این نظریه، انسانهای خیراتمند و دیگر انسانها ساختار بدنی متفاوت و به احتمال زیاد شیوه جفتگیری متفاوت و حتی بوی بدن متفاوتی داشتند. این دو گونه احتمالاً تمایل جنسی کمی هم به یکدیگر داشتند و حتی اگر رومئوی نئاندرتال و ژولیت انسان خردمند عاشق همدیگر نمی نمیتوانستند فرزندان باروری به دنیا بیاورند زیرا فاصله ژنتیکی این دو گروه را از هم جدا میکرد. این دوگونه کاملا از هم جدا ماندند و وقتی نهاندرتال ها از بین رفتند یا قتل آم شدند، ژنشان هم با خودشان نابود شد. به اعتبار نظریه، انسان خردمند بدون اینکه با دیگر گروه های پیشین انسانی ادغام شود جایگزین آنها شد. اگر اینطور باشد، اصل و نصب تمام انسانهای کنونی می تواند به شرق آفریقا در هفتاد هزار سال قبل برگردد، بنابراین همه ما انسان خردمند خالص هستیم اوامل بسیار زیادی به این بحث اشاره دارد از چشمانداز تکامل هفتاد هزار سال دوره ای نسبتا کوتاه است اگر نظریه جایگزینی درست باشد تمام انسانهای زنده تقریبا یک پیشینه ژنتیک مشترک دارند و تفاوتهای نژادی بین آنها ناچیز است اما اگر نظریه آمیزش صادق باشد، بسیار محتمل است که میان آفریقایی و آسیایی ها تفاوتهای جنتیک وجود داشته باشد که به صدها هزار سال قبل برمیگردد. این یک سلاح سیاسی است که می‌تواند انبار مهمات انفجارامی را در اختیار نظریه های نجات پرستان قرار دهد. تی دهههای اخیر نظریه جایگزینی متداول بوده زیرا مدارک باستانشناسی محکمتری ارائه داده و از نظر سیاسی صحیحتر بوده محققین نمیخواستند با ادعای وجود تفاوت ژنتیک چشمگیر میان اقوام نوین زمینهساز تهاجمات نژادپرستانه باشند اما در سال 2010 وقتی نتیجه یک بررسی چهارساله ساله در مورد نقشه ژنوم نئاندرتال ها منتشر شد همه چیز تغییر کرد متخصصین ژنتیک موفق شدند از فسیل های یافت شده به قدری دی ای دست نخورده نئاندرتال ها را جمع آوری کنند که برای مقایسه وسیع بین دی ان انسان های امروزی کافی بود نتیجه تحقیق جامعه علمی را مبهود کرد. این تحقیق نشان داد که بین یک تا چهار درصد از دی منحصر به فرد انسان امروزی در خاورمیانه میانه اروپا همان دی این است. این میزان زیادی نیست اما قابل توجه است. شوک دوم چند ماه بعد آمد، DNA استخراج شده از انگشت فسیل شده در دنیزوا نشان داد که انسان دنیزوا تا 6 درصد از ژن منحصر به فرد خود را با ملانزیایی و بومی استرالیایی مشترک است. اگر این نتایج درست باشند پیروان نظریه ی آمیزش به حداقل چند نکه درست اشاره می کنند. و این مهم است که به خاطر داشته باشیم که تحقیقات بیشتری در جریان است که می تواند این نتایج را تقویت یا جرح و تعدیل کند. اما این مفهوم نیست که نظریه جایگزینی کاملا نادرست است. از آنجا که دی کمی از نیاندرتال ها و دنیزوها در جنوم انسان امروزی وجود دارد، بنابراین این غیر ممکن است بتوانیم از ادغام بین انسانهای خردمند و گونه های دیگر انسانها صحبت کنیم. حتی اگر تفاوت بین جنوم گونه ها به اندازه نبود که به طور کامل مانع آمیزش بارور بین گونه ها باشد، اما به اندازه بوده که بتواند این تماس ها را نادر کند. در این صورت چطور میتوانیم خویشاوندی زیستی، میان انسانهای خیردمند، ناندرتالها و ها را درک کنیم؟ آنها قطعاً از گونه های مختلف نبودند، آنطور که ازپا و اولاخا هستند. از طرف دیگر، آنها فقط دو گروه متفاوت از یک گونه مثل سگ بولداگ و سگ اسپانیل هم نبودند. واقعیات زیستی سیاه و سفید نیستند بلکه محدوده خاکستری مهمی هم وجود دارد. دو گونه که نیاکان مشترکی دارند مثل ازپا و اولاغ ها در دوره متفاوت دو گروه از یک گونه بودند مثل سگ بولداگ و سگ اسپانیل. باید در گذشته مقطعی وجود می داشته که این دو گروه تقریبا متفاوت بودند. اما در شرایط نادری توانستند با یکدیگر جفتگیری کنند و فرزندان باروری به دنیا برند. سپس جهش دیگری این رشته ارتباطی آخر را قطع کرد و هر کدام در مسیر تکاملی متفاوتی قرار گرفتند بنابر میرسد که در حدود هزار سال قبل انسان خردمند ناندرتال و دنیزوا در این محدوده قرار داشتند آنها تقریباً و نه تماماً متعلق به گونههای کاملاً مجزایی بودند. به طوری که در فصل بعدی خواهیم دید، در همان زمان انسان خردمند بسیار متفاوت از نئاندرتال و دنیزوا بود. نه فقط از نظر ویژگیهای جسمی و رمزهای ژنتیک، بلکه همچنین از نظر قابلیت‌های شناختی و اجتماعی. با این وجود هنوز محتمل به نظر می رسد که انسان خردمند و نهاندرتال در موارد نادری می توانستند فرزند باروری به دنیا بیاورند. این دو گروه با هم ادغام نشدند اما تعداد محدودی از ژنهای خوش اقبال نهاندرتال موفق شدند در زیر پرچم انسان خردمند خود نمایی کنند. این ناخوشایند و شاید هیجان انگیز است که فکر کنیم که ما انسانهای خردمند زمانی توانستیم با یک حیوان از گونه متفاوتی جفتگیری کنیم و فرزندان مشترکی به دنیا آوریم. اما اگر نیاندرتال ها،, ها، و انواع دیگر انسان ها به انسان خردمند آمیزش نکردند، پس چرا از بین رفتند؟ یک امکان این است که انسان خردمند آنها را به انقراض کشاند تصور کنید که گروهی از انسانهای خردمند به دررعی در بالکان می رسیدند که در آن نیاندرتال ها صدها هزار سال زندگی می کردند. تازه واردین شروع به شکار گوزن و جمعوری مغزهای گیاهی و انواع توتها می کردند که غذای سنتی نیاندرتال ها بود. انسان های خردمند به مدد فنون بهتر مهارت‌های اجتماعی برتر خود شکارگران و خوراکجوهای ماهری بودند و به این دلیل کسرت یافتند و در منطقه گسترش پیدا کردند. نیاندرتال ها به دلیل دسترسی به منابع کمتر بیش از پیش برای تأمین غذای خود با مشکل روبرو شدند تا اینکه از جمعیتشان کاسته شد و نسلشان به تدریج از بین رفت. شاید به جز یکی دو نفر از آنها که به همسایگان انسان خردمند ملحق شدند. یک احتمال دیگر این است که جنگ بر سر منابع به خشونت و کشدارهای دست جمعی انجامیده. شکیبایی خصلت بارز انسان خردمند نیست. در دوران نوین، تفاوت کوچکی در رنگ پوست، گویش و دین برای گروهی انسان خردمند کافی بوده تا گروه دیگر را نابود کند. آیا انسان های خردمند باستانی تحمل و شکیبایی بیشتری در مقابل یک گونه انسانی کاملا متفاوت داشتند؟ این احتمال بسیار زیاد است که روی در روی خردمند با ها منجر به اولین و برجسته ترین تصفیه‌ی قومی تاریخ شده باشد. صرف نظر از اینکه چه اتفاقاتی رخ داده، موضوع ها و دیگر گونه‌های انسانی یکی از بزرگترین معماهای تاریخی شده تصور کنید که چه اتفاقاتی می توانست رخ دهد اگر نئاندرتال ها یا دنیزووا ها پا به پای انسان خردمند باقی می ماند. در جهانی با های مختلف انسانی چه فرهنگها، ها جامعه ها و ساختارهای سیاسی در کنار هم می توانست به وجود آید برای مثال چه باورهای دینی می توانست به وجود آید آیا کتاب پیدایش نهاندرتال ها را از نسل آدم و هوا معرفی می کرد؟ آیا عیسی مسیح حاضر بود به خاطر گناه دنیزواها کشته شود؟ و آیا قرآن برای انسانهای صالح صرف نظر از اینکه به چه گونهی تعلق دارند جایی در بهشت خصاس می داد؟ آیا ناندرتال ها می توانستند در گروهان های روم باستان و یا در دیوان سالاری های گسترده امپراتوری چین استخدام شوند؟ آیا برابری همه اعضای جنس انسان در اعلامیه استقلال آمریکا بدیهی به شمار می رفت؟ آیا کارل مارکس فراخان کارگران تمام گونه ها متحد شوید را اعلان می کرد؟ در این ده هزار ساله اخیر ما به این خود گرفته ایم که تنها گونه انسانی هستیم و این امکان هر تفکر دیگری را از ما سلب می کند. فقدان وجود برادر و خواهر باعث می شود خود را اشرف مخلوقات فرض کنیم و احساس کنیم که بین ما و دیگر حیوانات شکاف عظیمی وجود دارد. وقتی چارلز داروین اعلام کرد که انسان خردمند حیوان است در میان دیگر جانوران همه را به خشم آورد. حتی امروز بسیاری از مردم نمیخواهند این را بپذیرند. اگر ناندرتال ها امروز زنده بودند، آیا کماکان خود را موجودات متفاوتی فرض میکردیم؟ شاید به این دلیل بود که نیاکان ما ناندرتال ها را ریشه‌کن کردند. آنها به قدری به ما نزدیک بودند که نمیتوانستیم انکارشان کنیم اما همزمان به قدری متفاوت بودند که نمیتوانستیم تحملشان کنیم صرف نظر از اینکه انسان خردمند شایسته سرزنش باشد یا نه به محض اینکه پا در مناطق جدید می گذاشت ساکنان بومی منقرض میشدند. آخرین بقایای انسان سولوئنسی به حدود پنجاه هزار سال قبل برمی گردد. انسان دنیزواک کمی بعد از آن ناپدید شد. نیاندرتال ها در حدود سی هزار سال پیش منقرس شدند. آخرین انسان های ریزنقش قریب به دوازده هزار سال پیش در جزیره فلورس ناپدید شدند. اینها از خود مقداری استخوان، ابزار، تعدادی ژن در دینه دی ما و کوهی از پرسش های بیپاسخ به جا گذاشتند. آنها ما انسان‌های خردمند آخرین گونه انسانی را هم به جا گذاشتند. راز موفقیت انسان خردمند چه بود؟ چطور توانستیم با چنین سرعتی مکان‌های دوردست با شرایط زیست محیطی گوناگون را اشغال کنیم؟ چگونه تمام گونه‌های انسانی دیگر را از صحنه روزگار محو کردیم؟ چرا حتی آن نیاندرتال های نیرومند با هوش و مقاوم در مقابل سرما نتوانستند از تهاجم ما جان به این مباحث کماکان هیجان انگیزند. ترین جواب درست همان است که این بحث را امکان پذیر می کند. انسان خردمند جهان را قبل از هر چیز به مدد زبان منحصر به فرد خود تسخیر کرد.